الرحمن الرحيم المطلب الرابع المكروه مطلب چهارم مکروه است چون جلسه قبلی مندوب بود بله شماره 24 کتاب حرام بود و انواعش درست الان چهارمینش هست مطلب الرابع چارمینش مکروهه و بعدش مطلب خامس که مباهه خوشماره بیس چارم به همین مکروه فرداخته و هو هو مطلب طلب الشارع من المکلف ترکه لا على وجه الحتم والالزام کما لو كانت صیغته بنفسها داله على الكراهت او كانت صیغته من صیغ النهی وقامت القرينه على صرفها من التحريم الى الكراهه بعدي بفرماید که مکروه آن است که شارع طلب کرده باشد از مکلف ترک آن را مکروه آن است که شارع از مکلف ترکش را طلب کرده باشد ولی نه شکلی حتمی و الزامی آقا شاره بگه این کار رو انجام ندید ولی مثل حرام به شکل الزامی نیست مثل واجب و مستحب در واجب شریعت به شکل الزامی طلب کرده بود و در مستحب طلب کرده بود اما نه به شکل الزامی اینجا در حرام و مکروه شریعت هر دوتا رو طلب کرده که ترک بشه انجام نبیگیره ولی در حرام به شکل حتمی و الزامی اما در مکروه غیر الزامی و این طلبش میتونه با خود ای باشه که خود اون سیغه دلالت بر کراهت بکنه حالا میگه که این کراحت چطوری یستفاد چطوری گرفته میشه. میگه میتونه خود سیغه دلالت بر کراحت بکنه آه؟ یا نمیتونه با سیغه نهی اومده باشه با سیغه چه اومده باشه؟ نهی اومده باشه ولی در کنار اون صیغه یک قرینه ای باشد که این نهی رو از حرمت به برسونت بکراحت پس می خود صیغه دلالت بر کراهت بکنه که مثالا شمی میاره و می تواند با س... این ترک با صیغه نهی باشه این طلب ترک با صیغه چه باشه نه باشه و در کنارش قرینه وجود داشته باشه که به ما بگوید این نه دلالت بر حرمت نمی کند و دلالت بر کراهت خب فمن الاولى مثالش برای اولی یک یعنی این که خود سیغه دلالت بر چی بکند بر کراهت قوله عليه السلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال همان الله تعالى يكره كراهة دارت مكروه بدارت ناقسا بدارت برای شما کیلو قال را مگونگوهای بیهوده را و سؤال زیادی را و سؤال زیادی را و از بین بردن مال را خب این تا اموری که اینجا اومده بودن اینا هم مکروه هست ولی کراهتون های از سیغه نه هست یا نه خود سیغی دلالت بر کراحت میکنه میگه خود سیغی دلالت بر چی میکنه, میکنه. بله پس این مثالی بود برای اونی که خود سیغی دلالت بر کراحت میکنه اینجا نهی نه نا و بود شما الله نه دیدید نه دیدید نه دیدید دیگه نه و حکم المقروحی ان فاعله لا يثاب مکروه حکم گناهکار نمیشه ان فاعله لا فاعلش گناهکار نمیشه و ان کان اگر چکه که میشه یعنی کار خوبی رو انجام نمیده اما گناهکار هم نمیشه و ان تاریکهو هو و یصاب. اما تاریک مکروه کسی که مکروه ترک میکنه مدح میشه خارش پسندیده است و ثواب داده میشه پاداش داده میشه اذا کان ترکهو لله ولی زمانی که ترکش از بی بیالاقگی علاقه نباشد بلکه به خاطره الله باشد آیا کار مکروه است؟ طرفتون خوبیدش ندارد انجامش نمیده اینجا که پاداشی نمیبره ولی بگه اگر چون این مکروه نه اومده ازش انجامش نده به این جهت اون موقع پاداش دارد پس همه چیز واضح بیگه خودش ما قدمناه هو علی رأی الجمهوری و استلاحه آنچه رو که تا اینجای کار بیگه در رابطه با مکروه ما بیان کردیم طبق نظریه جمهور و طبق استلاح جمهور بود یعنی جمهور مصطلحشون چنین هست با این استلاح تو کتابشون میارن فالمکروه عندهم نه اون مکروه در نزد جمهور یک نوع هست مکروه در رز جمهور یک نوع هست أما الحنفية فعندهم المكروه نوعان أما در نزد حنفية مكروه برد نواهست أما در نزد حنفية مكروه الأول المكروه تحريمًا مكروه تحريمي وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل نزنيًا لا قطعية مکروه تحریمی که قبلا هم اشاره کرد آن هست که شریعت طلب کرده هست از مکلف ترک آن را به شکل حتمی و الزامی قبلا گفت که احناف اگر یه چیزی رو شریعت به شکل الزامی بگی که انجامش ندید حرامه اگر دلیلش قطعی باشه و اگر دلیلش زنی باشه بهش میگن مکروه تحریمی حالا داره میگه که دوباره همون حرفو تکرار میکنه ولی اینجا بازم پیش اومد با تاج مناسبت نه میگه که مکروه تحریمی آن است که شارع از مکلف ترک آن را به شکل الزامی طلب کرده است ترک آن را ولی با دلیل زنی نه با دلیل قطعی چون اگر دلیل قطعی به اهداف بهش میگه چی حرام کل خطبه علی الخطبه مانند خواستگاری کردن برخواستگاری کردن شخص دیگر خب اونجا مثال آورد گفت با در روش ثابت میشه یا اون سیغه دلالت بر کراحت بکنه برمانده. یا با سیغه نه اومده باشه همراه با قریره با سیغه نه یش همینه در حدیث اینجور اومده لا یخطب بعدکو فلا خطبتی بعد لا یخطب یا لا یخطب این لا چیه؟ نه. نه اینجا میگه که مکروه آن است که شا... در نزد احناف البته شاره به شکل الزامی گفته این کار رو انجام ندید ولی دلیلش قطعی قطع نیست و زنی هست باند خطبه بر خطبه غیر چون میگن از نوع واحد هست خبر از نایی چه آقا از نایی متواتر نیست که اون موقع قطی میشه دیگه بلکه زنی هست بلکه چه پس آقای اون با توجه بیم پس این ک... هر حدیثی که متواتر نباشه زنیش حساب نکنه در زنی بودن که خب مسلم از بین خبر واحد و خبر متواتر فرق هست در حقیقت امر که انسان نگاه بکنه ولی جمهور این تقسیم بندی ها رو نیاوردند اما احناف این تقسیم بندی رو دارد که اگر زندی باشه اون موقع اسمشو چیزی دیگه گذاشتند اسمشو چیزی؟ بله بانند خواستگاری کردن بر خواستگاری کردن شخص دیگه آقا تو خبر داری که فلانی رفته جای خواستگاری کرده تو دیگه نرو ها؟ معاملهشو به هم کارشو خراب نکن این روزا بی‌ایمانی زیاد شده. الان این چه یشه؟ ها؟ الان دیگه عین یه خب خیر بر معامله شخص دیگر احناف میگن مکروه تحریبیه البته من اینجا یه مثالی آوردم این مثال مثال خوبی نبود که من گفتم خواستگاری بر خاصگاری شخص دیگر برای مکروه مکروه جمهور به عنوان مثالش آوردم نه این مثال چون قرینه نداری این حرامه مکروه نیست و چیه؟ حرامه بله ميه... یه لا نه هست ولی نه دلالت بر حرمت میکنه منظور من این بود که اونجا مکروه مکروهی که با نه ثابت میشه باید قرینه هم راهش باشه تا دلالت بر مکروه بکنه یعنی این مثالی برای مکروه نیست منظورمون مکروه نزد جمهور بود که احناف به اون مکروه بگن تنزیهی مکروه تنزیهی خب نه دقت داشته باشید پس مکروه اهناف میگن مکروه تحریمی و مکروه تنزیه مکروه تحریمی اهنافمون حرام بقیه ها هست همون حرام بقیه ها است با این فرق که فقها در نظرشون جمهور در نظرشون فرقی نمیکنه چی دلیل قطعی باشه چه زنی فرقی نمیکنه ولی اهناف در نظرشون فرق میکنه و تقسیم بندی این تقسیم بندی رو قائلند البته تقسیم بندی خوب یا انسان متوجه میشه که نوع دلیل چه هست. معامله بر معامله شخص دیگر، معامله بر شخص دیگر هم از اون جایی که با دلیل زننی ثابت است، احناهی ناو مکروه تحریبی می داند. فقط ثبت کل من همه بخبر الاحاد چون میگه با خبر الاحاد ثابت شده و هو دلیل زنی و دلیل زنی است و حکم حکم المحرمین دل جمهور و حکم مکروه تحریمی همون حکم حرام هست در راز در حرام بودن بینوینا فرقی قائل نیستند خب الثانی المکروه تنزیحا مکروه تنزیحی هو ما طلب الشعر الكف عنه طلبا غير ملزمن للمكلف مكروه تنزيهان است كي شريعات طلب کرده است ترك ان را طلب غير الزامي براي مكلف طلب غير الزامي غير حتمي مثل اكل لحوم الخيل للحاجة اليها في الحروب معنى دخوردان غوشته اسب براي نياز در جنگها والوضوء من سوء سباع الطير وزوغرفتاً از پسماندية پرندگان الشكاري وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم ولا يعاقب حكم إن مكروه إن اسك فائلش مزمت نميشه وعقوبت داده نميشه وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل اگر چه که انجام این مکروه برخلاف اولا و برخلاف افضل است م. یعنی افضل این است که این کار رو انجام نیبر. ندهد اولا این است که این کار رو انجام باله حالا چه اینه و سدیده مکروه نه ماجوری بسماند اش وزو گرفتن با آب پس ماندهش میگه مکروه بل آبی که خورده و باقی مونده. بری از این باقی مانده وزو میگیری میگه مکروه سادات احناف میفرمایند که وزو گرفتن از همچنین آبی چه هست؟ مکروه تنظیحی است. خب المطلب الخامس المباح المطلب پنجوه المباح المباح هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله و تركه مباح آنس كي اختيار دادس دا شارع مكلف را بين انجام و بين تركش دیره نه نه اینجا در فرموده بود که این کراهت از چه چیزی گرفته میشه یا به عبارت ساده تر از کجا بدونیم که این امر مکروه یک یا با فن با مادش دلالت بر کراهت بکنه مانند دهبی مثالی که خودش آورده بود ان الله یکره لكم قیل و قال یا اومده یا میگه با صیغه نهی باشه یا با صیغه چه باشه چون خود نه بدون قرینه دلالت بر چی میکنه دلالت بر حرارت میکنه موقعی که اومد آقا لا زنا یعنی زنا چیه؟ حرام لا یختب بعضو کن بعضا آقا یعنی قیبت حرام حرام چون با سیغه نه اومده؟ دیگه لا یختب لا لای نه نه گفته بود راه دومی که ما مکروه بشناسیم سیغه نهی هست همراه با؟ قریده حالا مثال نه آورده بود تو این مختصر ولی در کتب بزرگتر مثالشو میارم مثلا مثالی رو که استاد زهیلی رحمت الله علیه آورده اینه که لا تسعلو عن ان اشیاه انتو بدلکم تسعق لا تسعلو عن اشیاه انتو قرار میگه از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان آشکار شد ناراحتتون بکنید آه به مذاقتون نخوره ناراحت بشین در سبب جوابش جوابش که پا شد اون موقع چی ناراحت بشید میگه نا نا این نهی نح... لا تسالو دیگه لا چیه نهیه نه نه. ولی میگن یک قرینه صارفی داره که این نهیو از حرمت به چی ببره به قرینش چه هست قرینش همین ادامه آیه هست که میگه و این تسالو عنها هینا ينزل القران تبدلكم اف الله عنها والله غفور حليم میگه چون اگر در مورد این اشاء بپرسید زمانی که قرآن نازل بشه تبدل اكو برای شما چی میشن آشکار میشه پس علت نپرسیدن این چیزه و این یک قرینه است که بگه دلالت بر این میکنه که حرام نیست اما ما تروه پسندید هام بیس اینجا اولیش مثلا نه بیا دو تا چیزای سوال نکنید که مثلا اگر دو خبر میزارید راحت میشید ولی بعدش میگه شعبی که جان صحابی کسار بذارم درست درسته خب بعدش چی میگه بعد مونده ادامه آی میگه اگر چون شما در مورد این چیزها پرسیده بشید نه. بپرسید اون موقع برایتون آشکار میشه برای چی میشه؟ آشان. پس علت نپرسیدن رو داره بیان میکنه بخاطر... پس این علت یه علتیه که یه قرینه یکی به ما بحث حرمت نیست بلکه بخاطر چیزی دیگر است بخاطر پس این یه قرینه برای که اون نهی اولی دلالت بر حرمت نمیکنه، بلکه دلالت بر مکروه بودن سوال پرسیدن میکنه بلکه دلالت بر قوب المطلب الخامس المباح مطلب 50 مباح است المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعل و ترک مباح آن است که اختیار داده دا است شارع مکلف رو بین انجام و بین ترک آقا تو رو اختیار داده دا که این انجام بدی یا انجامش ندی ولا مدح ولا ذم على الفعل و ترک فعل و ترکش هر دو تا مذمزه نداره چه انجامش بدی چه چه کنی هیچ کدوم مدهوزم نداره و یقال له الحلال به این مباح هم گفته میشه حلال خلال. و تو عرف به بی امورت از کجا پی ببری؟ اگر یادتون باشه هر کجا گفت ما از کجا بدونیم که این عمر واجبه از کجا بدونیم که این امر مباحه از کجا بدونیم که این امر مکروهه از کجا بدونیم که این امر حرامه حالا نوبت رسیده که این مباح بودن از کجا بهش پی برده بیشه از کجا یوسفات نه درست نه صواب ولی از از نص ها چطوری بدونیم که این امر منظور چینه میخواد شما رو اخه اصول یاد بده میخواد شما رو فقیه بار بیاره میگه تو عرف اباحه به امور منها شلون اخته میشه بودن با اموری یک از جمله الف النص من اشاره به حل یک از جانب شریعت اشاره نس وجود داشته باشه به حلال بوده لوجه خودش بگه صراحتا که این چیز چه است حلال هست بانند الیوما احل لکم امروز برای شما این چیزا چی میشن حلال میشن پس از جانب شریعت ما نسل داشته باشیم بر چه چی چیزی بر حلال بودن چیزی از جانب شریعت نسل داشته باشیم بر مانند آیه کریمی که میگه الیوم یا در آیه دیگر رو بده احل لکوم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم در شبه های روزه اوحل لكم لیلت السیان حلال شده است در شبه های روزه ارفق و نسائكم. هم خوابی با زنان قبلا حلال نبودا پس اینجا ما از کجا بدونیم که این کار مباهه خود نس بگه که این چیز برای چیه حلاله مباهه یا بله دیگه شبه تو میتونی شب یعنی با همسر بخوابید؟ آقا میتونید هر مسلمانی؟ فقط روز انسان مسلم چه هست؟ ممنوع هست شوی خوب؟ یکی درس درسی انا ايه ايه مباح و حلال يعني كامل يعني بله فرقش چی فرقش چی یا مثلا میگه اهل الله البیعه خدا بیعه حلال کرده مباحش کرده حلال مباح جواب اضافی رو درسی با طریق یا روش دوم جواب امر دیگه ای که ما به بفهمیم که این مسئله مباح چی است من اشاره على نفی الف او او حرج. آقا از شارع نص داریم که نفی گناه کرده نفی حرج کرده نفی ایراد کرده اگه بر تو ارادی نیست گناهی نیست مشکلی ندارد خب فمن الاول قول تعالی ما این ایه که نفی اسم میکنه میگه فمن از را غیر باقین و عادن فلا اسم علی هر کسی مجبور شد پس اسم گناهی براش نیست پس بر انسانی که در بیابانی مزتر شده است میخواد از گشنگی ببیرد جایی میخواد از گشنگی ببیرد میتونه مردار بخوره چرا مردار خوردن براش مباهه؟ چون رفی اسم شده است آ؟ یار رفیت جناح بشي آقا مشکلی بر تو؟ نداره. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم. ارادی نيست بر شما. اگر کنایتان، اومدید از اون زنی که شوهرش فوت کرده است، چکار کردید؟ خود در ایام اده نمیشه آقا سراحتا چکار کرد؟ باید زیرک باشه کنایه وارد باشه کناهتا بهش بفهمونه که بعد از پایان اده ما در خدمتی. درویی بامش، سرچائی کرتشی. آره. سوغاتی بگه ببار مسالمه دی، بار بده ای باد. بازی او بود. آره ایشون مثلا بگه یه سوغاتی بش بر... بده خب خب سوغاتی رو بش دادی، این گرچه کلام نیست، ولی یک کنایه عملی بسیار، یعنی چیز قشنگی فرمودی باور کن. خب بریم جلوتا و من الثالث مثال برای سفومی ليس على الاما حرج ولا على المریض حرج آقا میگه بر شخص کور حرج نیست بله کسی که کور هست کسی که چه هست خودشون زده به کوری نه شخصی که کوره ادامه آیه چی میگه؟ بله میگه لیسا علی الاعمى حرکت بر شخص کور ارادی نیست که فلان کارو انجام بده خب موقعی که میگه ارادی نیست یعنی این کار براش چیه مم. که ادامه آیه کارا رو بیان بکنه بی که چیکاری فس بيان غيره إنه كي إن كارب حلال جائز التعبير جيم التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة وعليكم السلام ورحمة الله الوسطيين نحن على فقه التيسير والموازنات بارك الله. أدران إنك شارد ما شاء الله كاره. ها ها. دار الكاره. مندش كلاس دوام من دمري ما ياهنشال ماشوب مندي. كلاس. كلاسن كولنا زينك تافري جيم التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة أن الوجوب إلى الإباحة. یا با سیغه امر اومده باشه ولی قرینه صارفی هست که به ما میگه که آقا این واجب نیست و اما چه هست مباحست حالا دقیق کنید میگه و اذا حللتم فاستادو فاستادو فعل امره استاده یستادو استاده استاد، استادا استادو فعل امر جمع یعنی okay. زمانی که حللتو از احرام بدر آمدید زمانی که از احرام حج بدر آمدید چه کار کنید خب این دستور دیگه ولی آیه این دستور دلالت بر واجب میکنه ما قبلا خود که امر دلالت بر چی میکنه okay. نه میگه اینجا دلالت بر مباح میکنه چرا؟ چون اینجا ابر بعد از یک ممنوعیتی اومده ببینید چون اینجا عمر ممنوعیت بوده آقا شکار ممنوع بوده برتون قبلا حالا داره میگه شکار کنید منظوری چی نیست که برتون واجبه یعنی اون از اون ممنوعیت آقا به در اومدید الان برتون چی شد مباه شد قواعدون البته در کتب بزرگتر مفصل توش بوده, خلال بوده. خلال بوده. بعد در مورد نه ممنوع بوده به خاطر یک عارضه ای به خاطر احرام قبلش شکار بوده موقع احرام مثلا ممنوع شده مابش شده دوباره بعدش الان دستور میده این دستور اینجا دلالت بر چی میکنه بر اباحه میکنه بر چی میکنه میگه و اذا تحللتم من احرام الحج فسید و لکن زمانی که شما از احرام حج درامدید پس پس برای تو که هست؟ مباح هست پس این با این چه ما بیداریم که این امر مباحه یک خود شریعت گفته باشد که احلال لکن یا حلال لکن یا هر سیغی نیگه که باشه با این ماده با مادهش به ما بگه که آقا اون چیز حلاله یا نصی اومده باشه بر نفیه گناه آقا گناهی مم. نیست اگه این کار رو انجام بدید چه زمان گناه نیست زمان که کار چه باشه مم. آقا ایرادی نیست مشکلی نیست گناهی نیست مثلا در سبر مثلا بله مریضی بله یا مثلا سیغه امر باشه اما قرینهی به ما بگه که آقا اینجا دلالت بر وجوب نمیکنه دلالت بر استحباب هم نمیکنه بلکه دلالت بر چی میکنه بر مباح بودنش میکنه هوگاهی موگه البته مثلا مثالی تو ذهن بیاد این حالت این خاصیت این مغزائه و آخرین قسمتش هم همین بود که گفتیم پس این چهار روش نه این سه که اینجا ذکر کرده بود خود دار کتابت مفصل بیشتر ذکر میکنه ولی اینا مهمترین هایی هستن که بقیه هم به اینا برمیگرده شما با این شیبه ها میدونید که مسئله چه هست؟ ان هست الله در مطلب سادس با هم دیگر چی رو خواهیم خواند